حکایت، یاد دارم که شبی در کاروانی همه شب رفته بودم و سحر در کنار بیشهی خفته. شوریدی که در آن سفر همراه ما بود، نعری برآورد و راه بیابان گرفت و یک نفس آرام نیافت. چون روز شد، گفتمش آن چه حالت بود؟ گفت بلبلان را دیدم که به نالش در آمده بودند از درخت و کپکان از کوه و قوکان در آب و بهایم از بیشه. اندیشه کردم که مروت نباشد همه در تسبیح و من به غفلت خفته. دوش مرقی به صبح می نالید. عقل و سبرم ببرد و طاقت و هوش یکی از دوستان مخلص را مگر آواز من رسید به گوش، گفت باور نداشتم که تو را بانگ مرغی چنین کند متحوش، گفتم این شرط آدمیت نیست، مرغ تسبیح گوگ و من خاموش،